عزیزان خدا در عیسی تسلیه بزرگی برای ما داره اما این تسلیه به این منظور نیست که ما اون رو برای خودمون نگه داریم به درس دیگری از معزی سرکو خوش اومدید در درس امروز معلم ما خواهد داد که برای شاگردان اولیه چقدر مهم بود و برای شاگردان امروزی هم مهمه که بدونیم وظیفه ما به عنوان پیروبان مسیح اینکه تسلی دهنده باشیم مردم اطراف ما پر از انواع مشکلات و نیازها هستند و ما برگزیده شدیم تا به اونها تسلی و مشورت بدیم همون تسلی که خود ما در مسیح تجربه کردیم حالا معلم ما با درسی بسیار عملی با شما همراه خواهند بود امروز می‌خواهیم که به دومین رفتار زیبا نگاه کنیم خوشا به حال ماتم زدگان. زیرا ایشان تسلی خواهند یافت معنی این چیه ماتم چیه باز هم همونطور که در مورد رفتار اول دیدیم احتمالات زیادی هست و شاید یا این یا اون نباشه بلکه هر دو میتونه باشه از نظر تفسیر و کاربرد ممکنه این یکی یا اون یکی نباشه بلکه میتونه معنی های زیادی داشته باشه اولا ممکنه به این معنی باشه عیسی میگه به پایین کوه نگاه کنید اون مردم رو اونجا میبینید خب اون مردم زخمی هن. اون مردم مشکلات زیادی دارن. حالا آیا صادقانه فکر میکنید که میتونید برید اون پایین و بخشی از راه حل و بخشی از جواب برای اونها باشی؟ بهشون کمک کنید که بر این مشکلات طاقت فرسا غلبه کنن؟ بعضی از اونها مشکلات غمنگیزی هستن. واقعا فکر میکنید بتونید خادم تسلی ای برای اونها باشی و هرگز به خودتون آسیب نزنی؟ پولس رسول در دوم قرنتیان باب یک به ما میگه که زمانهای سختی رو در آسیا پشت سر گذاشته. او در اولین بخش از آیه نه گفته که بارها با خودش گفته این دیگه آخرشه. کار تمومه. پولس آیه نه رو با گفتن چنین چیزی به پایان میبره. چنین اتفاقی افتاد تا به خدایی که مردگان را زنده می کند متکی باشیم. نه به خودمون. بعد او میگه در اون نقطه تسلیی که ما تجربه کردیم فقط از رابطه با خدا بود اون تسلی منبعی شد برای راه ها و جوابهای ما و حالا وقتی ما به طرف مردمی میریم که زخمی هستند، کسانی که مشکل دارن مهم نیست که مشکلات چی هستند. ما قادر هستیم ما شایستگیشو داریم که به اونها کمک کنیم چون ما میتونیم از تسلی که در موقع رنج هامون پیدا کردیم با اونها حرف بزنیم مهم نیست که رنجها یا امتحانات اونها چی هستند. همه این رفتارها باید در زمینه ای ملاحظه بشه که موعزه سرکوه در اون داده شده. این موعزه به ما میگه که به پایین کوه نگاه کنیم و افراد پای کوه رو ببینیم. اگر میخواهید بخشی از راه حل اونها و بخشی از جوابهای اونها باشید، باید اولین رفتار زیبا رو یاد بگیرید که خوشابهال فقیران در روح بود. شما باید بدونید که من نمیتونم اما خدا میتونه و اگر نباید کارها رو به روش خودتون انجام بدید و هرچند اونها چیزهای خوبی باشند اما روش خدا نخواهند بود. روش خدا چیزی هست که واقعا راه حل و جواب اونها خواهد بود. با توجه به اون دیدگاه رفتار دوم میتونه این باشه که اگر شما خودتون دردمند نبوده باشید نمیتونید به مردم دردمند کمک کنید. بنابراین وقتی میگه خوشا به حال ماتمیان زیرا آنها تسلی خواهند یافت بعد از اینکه آنها از ماتم خود تسلی یافتند میتونن به دردمندان دیگه کمک کنن چون میتونن به اونها بگن که تسلی واقعی از کجا میاد تسلی واقعی فقط در خداوند پیدا میشه احتمال دیگری از منظور عیسی میتونه این باشه وقتی یاد میگیرید که در روح فقیر هستید آیا این امکان هست که ماتم بگیرید و قصه بخورید در حالی که یاد گرفتید که شما نمیتونید اما خدا میتونه؟ بله، حتماً امکان داره. خدا چطور اولین رفتار زیبا رو به ما یاد میده؟ من نمیتونم اما خدا میتونه. احتمالاً با شکست ها و شکست های خیلی زیاد. گاهی اون شکست ما رو به نقطه قصه خوردن و ماتم میرسونه. خوشابهال ها میتونه در گروه های دوتایی دستبندی و درک بشه. اونها دوتا دوتا با هم هستن. حال فقیران در روح و حال ماتمیان مثل یک جفت هستند اونها یک جفت رفتار زیبا هستند و با هم همراهند بعضی ها میگن که معنیش این هست که مادامی که شما یاد میگیرید در روح فقیر هستید تمام شکست هایی که به شما یاد میده شما نمیتونید اما خدا میتونه امکان داره ماتم و قصه زیادی در رابطه با اون تجربه باشه که شما یاد میگیرید در روح فقیر هستید. برای پتروس هم همینطور بود. او به تاریکی رفت و به تلخی گریست. اون قصه بود. اون ماتم بود. همون چیز برای موسی هم اتفاق افتاد. وقتی او به اماق بیابون رفت، چهل سال اونجا موند. او احتمالا مردی بود که قصه میخورد و ماتم داشت وقتی با قدرت خودش سعی کرده بود قومش رو نجات بده با چه بدبختی شکست خورده بود او سعی کرده بود بنی اسرائیل رو با کشتن یک افسر مصری نجات بده هنوز یه فکر دیگه هست در مورد اینکه که ممکنه منظور از خوشاب حال ماتم زدگان زیرا ایشان تسلی خواهند یافت چی باشه سلیمان حکیم ترین مردی بود که تا کنون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 شنیدن اطاب حکیمان بهتر است از شنیدن سرود احمقان زیرا خنده احمقان مثل صدای خارها در زیر دیگ است و این نیز طالت است به درستی که ظلم مرد حکیم را جاهل میگرداند و رشوه دل را فاسد می‌سازد انتهای امر از ابتدایش بهتر است و دل حلیم از دل مغرور نیکوتر در دل خود به زودی خشمناک مشو زیرا خشم در سینه احمقان مستقر می شود مگو چرا روزهای قدیم از این زمان بهتر بود زیرا که در این خصوص از روی حکمت سوال نمی کنی حکمت مثل میراث نیکوست بلکه به جهت بینندگان آفتاب نیکوتر زیرا که حکمت است و نقره ملجایی اما فضیلت معرفت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 به عبارت دیگه چیز خوبی در مورد ماتم گرفتن هست سلیمان در جامعه میگوید وقتی به مراسم تدفین میروید و به کسی نگاه میکنید کنید که از دنیا رفته خیمه او بدن جسمانی او هنوز وجود داره اما او رفته یکی از چیزهایی که این رو تجربهی ای هشیار کننده برای شما میسازه، اینه که میدونید روزی همون اتفاق برای شما هم خواهد افتاد چیزی که به نظر میرسه سلیمان میگه این هست که وقتی شما در یک مراسم تطوین هستید سیستم ارزشی شما بیشتر میتونه در راستای سیستم ارزشی خدا باشه نسبت به زمانی که در یک مهمانی حضور دارید. پس بهتره که به خانه ماتم برید تا به خانه بزم. چون وقتی به خانه ماتم میرید که همون عزاداری هست میدونید که این سرانجام همه انسان هاست. پایان شما هم همین خواهد بود. و به عنوان فردی زنده بهتره که این رو در قلبتون نگه دارید. خیلی خوبه که به این فکر کنید که روزی زندگیتون خاتمه خواهد یافت. آیا اونطور که باید زندگی می کنید؟ کتاب مقدس در جاهای زیادی میگه گه که ابدیت ارزش بیشتری از زمان حال داره. پولس در دوم قرنتیان باب چهار و پنج این رو به ما میگه گه. چون ابدیت ارزش بیشتری از زمان حال داره بخش روحانی انسان نیست ارزش بیشتری از بخش جسمانی انسان داره بخش درونی انسان ارزش بیشتری از بخش بیرونی داره انسان درونی که پولوس به بخش روحانی انسان میگه ارزش بیشتری از انسان بیرونی داره به این دلیل که حتی وقتی بیماری میاد امکان داره که انسان بیرونی هلاک بشه اما انسان درونی هر روز تازه تر و تازه تر میشه و برای جایگاه ابدی آماده میشه این امکان هست که طرز زندگی فعلی شما در حال حاضر بر کیفیت ابدیت شما تاثیر بذاره تعالیم زیادی در کتاب مقدس وجود داره که بر افکار ما تاکید میکنه و به نظر میرسه سلیمان هم در مورد ماتم اینگونه صحبت میکنه شاید وقتی عیسی هم میگفت خوشا به حال ماتمیان زیرا ایشان تسلی خواهند یافت منظورش همین بوده چون وقتی که ماتم دارید ارزش‌های شما در راستای ارزش‌های خدا هست امکان داره که شما بیشتر به این واقعیت فکر کنید که ابدیت ارزش بیشتری از زمان حال داره و چیزهای نادیدنی ارزش بیشتری از چیزهای دیدنی دارند چیزهای روحانی ارزش بیشتری از چیزهای جسمانی دارند انسان درونی ابدی هست شما جایی در جایگاه ابدی برای همیشه زندگی خواهید کرد. وقتی ماتم دارید، به این قبیل چیزها فکر میکنید. اما وقتی در مهمانی هستید، ابداً به این چیزها فکر نمیکنید. شاید منظور عیسی هم همین بوده. من به عنوان یک شبان در مراسم تدفین خیلی ها شرکت کردم و معمولاً از همین دومین خوشابه حال معایزه کردم. خوشابه حال ماتمیان زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. من به نفر این را نفرین رو گفتم. اگر می‌خواهید برکاتی رو که عیسی در ماتم‌هایمان به ما وعده داده و تسلی رو که گفته می‌تونیم توسط ماتم پیدا کنیم درک کنید بذارید این سه قدم رو که باید بردارید بهتون پیشنهاد کنم بذارید ماتم شما شاید برای اولین بار در زندگیتون شما رو به جایی برسونه که سوالی درست بپرسید ها زندگیشون به آخر میرسه اما سوالات درستی نمیپرسند ایوب مثال بسیار خوبی برای این هست. البته ایوب یک تجربه ماتم داشته. او ده فرزندش را از دست داد، تمام داراییش را از دست داد و در نهایت سلامتیش را از دست داد. در سرتاسر تجربه ماتمش ایوب اجازه داد ماتمش او را به جایی برسونه که سوالات درستی بپرسه. او سوالات بزرگی مثل این پرسید. وقتی انسان میمیرد. آیا دوباره زنده می شود انسانی که میمیره روی خاک دراز میکشه و روحش او رو ترک میکنه او تموم میشه و بعد کجا میره وقتی انسان میمیره آیا دوباره زنده میشه خدا دوست داره ما چنین سوالاتی بپرسیم ایوب جوابهای عظیمی برای اون سوالات پیدا کرد وقتی اون مکاشفه مسیحایی رو دریافت کرد و در میانه رنجهاش گفت اما میدانم که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 در تجربیات ماتمشون بردارند، اینه که اجازه بدید ماتم شما شما را به جایی برسونه که به جوابهای خدا به سوالات درستتون گوش کنید. باز هم این همون کاریه که عیوب کرد. او سوالات درستی پرسید و به جواب خدا به بسیاری از سؤالهای درستش گوش داد. قدم سوم که من به صدها نفر در مراسم تدفین پیشنهاد کردم اینه. اگر می اون تسلی رو که ایسا برای ماتمیان وعده داده و اون برکاتی رو که او برای ماتمیان وعده داده به دست بیارید بذارید ماتمتون شما رو به جایی برسونه که به جوابهای خدا به سوالات درستتون باور کنید و وقتی به جوابهای خدا به سوالات درستتون باور کردید برکات و تسلی رو به دست خواهید آورد چون که نجات رو دریافت خواهید کرد و در نجات برکت هست اگر تجربیات ماتم شما شما رو به جایی برسونه که برای اولین بار در زندگیتون سوالات درست بپرسید و به جوابهای خدا گوش کنید و به اونها باور کنید این امکان هست که تجربیات ماتم شما بتونه بزرگترین چیزی باشه که در تمام عمرتون برای شما اتفاق افتاده. امکان داره وقتی عیسی گفت خوشا به حال ماتمیان زیرا ایشان تسلی خواهند یافت منظورش همین بوده باشه. باور کنید ارزش‌های عیسی ارزش‌های این دنیا نیست وقتی کسی رو که سالهاست ندیدید می‌بینید از اونها میپرسید که آیا حالشون خوبه وضع جسمانیشون خوبه آیا همه خانواده سلامت هستند حالشون خوبه و کارهاشون از هر نظر خوب پیش میره یا نه بعد به آنها میگید شما برکت یافته اید شما میتونید از همین ببینید که ارزش‌های عیسی با ارزش‌های این دنیا یکی نیستند ایسا به این واقعیت متعهد هست که ابدیت تر از زمان حال هست. مردم دنیا همیشه گفتند زندگی همه چیزه و ابدیت هیچ چیز نیست. شما فقط یک بار به دنیا میایید پس از همین یکبار استفاده تون رو بکنید، بخورید، بنوشید، شاد باشید، چون فردا خواهید مرد. همیشه در دنیا افرادی بودند که این را میگفتند. هنوز هم هستند کسانی که اینطور فکر میکنند. اتهیتی هم هستند که به محض اینکه مسیح رو پیدا میکنن میگن نه نه نه زندگی هیچی نیست همه چیز ابدیته اونها هم اشتباه میکنن میدونید کتاب مقدس چی میگه کتاب مقدس میگه ابدیت همه چیزه و به همین دلیل زندگی همه چیزه چون که مهمترین مطلب در مورد زندگی شما اینه که شما با طرز زندگی خودتون در این دنیا میتونید بر کیفیت عبدیتتونو تأثیر بذارید. هر چیزی که در زندگی برای شما اتفاق میفته به شما کمک میکنه ارزشهای های خدا رو ببینید. هر چیزی که وارد زندگی شما میشه و باعث میشه که شما جایگاه ابدی رو به عنوان ارزش بزرگ نجات درک کنید اون تجربه مبارکی هست. شاید منظور ایسا همین بوده وقتی گفته خوشابه حال ما زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. اولین دو خوشابه حالی که او گفته باید داشته باشیم تا بتونیم بخشی از راه حل و بخشی از جواب او باشیم همیشه با هم هستند و با هم جفتند. خوشابه حالها رو میتونیم جفت جفت ببینیم و اولین جفت از خوشابه حالها این دو رفتار هستند خوشابه حال کسانی که از فقر روحی خود آگاهند زیرا پادشاه یا آسمان از آن ایشان است و خوشابه حال زدگان زیرا ایشان تسلی خواهند یافت معنای چیزهای دیگه به طور خلاصه گفتیم که معنی واقعی این دو زیبا این هست خوشا به حال کسانی که میدونن که نمیتونن و فقط خدا میتونه این در بسیاری از عرصه های زندگی ما واقعیت داره این مخصوصا زمانی واقعیت داره که بخواهیم بخشی از راه حل و بخشی از جواب عیسی در زندگی دیگران باشیم خدا تنها کسیه که در واقع محرک اصلی در این راه حل و جواب ایسا برای گمشدگان این دنیا هست و فقط به این دلیل که ما در ناهمهنگیه با او هستیم و فقط به این دلیل که ما کانالی برای کارهایی هستیم که او میتونه بکنه این امید رو داریم که بخشی از جواب و بخشی از راه حل او باشیم برای اینکه عامل و وسیلهی باشیم که او توسط ما در زندگی دیگران کار کنه باید سهم خودمون رو از سهم او جدا کنیم باید بدونیم کجا سهم ما به پایان میرسه و سهم او شروع میشه پس باید بگیم وقتی به همه چیزهایی فکر میکنیم که او میخواد توسط ما در زندگی دیگران بکنه خواه این هدایت کسی به سوی مسیح باشه دیدن این که اونها تولد تازه رو تجربه میکنن یا تعلیم چیزهای روحانی به با اونها باشه یا دادن مشورت روحانی به اونها باید قادر باشیم بگیم که این رمز روحانی رو از دو خوشا به حال اول یاد گرفته ایم که من نمیتونم اما خدا میتونه. رفتار زیبای بعدی که ایسا مطرح میکنه مربوط به چیزیه که ما میخواهیم. خوشا به حال حلیمان زیرا ایشان وارث زمین خواهند شد. حلیم بودن چیه؟ حلیم بودن شاید یکی از چیزهایی باشه که بیش از همه بد تعبیر شده و بعد به کار گرفته شده حلیم بودن مثلا ضعف نیست بسیاری از مردم فکر می کنند که عیسی حلیم و ملایم و ضعیف است ها فکر میکنند حلیم بودن یعنی ضعف این معنی حلیم بودن نیست اگر شما مسیح کتاب مقدس رو بشناسید اگر شما این مرد عیسی مسیح رو بشناسید حلم او به این معنی نبود که او ملایم و ضعیف است او ضعیف نبود. عهد قدیم میگه که موسا حلیم ترین مردی بود که تا اون روز زندگی کرده بود. اگر موسی رو میشناسید آیا این به معنی ضعف او بود؟ او فقط به این دلیل که حلیم بود ضعیف نبود. متن دیگری در حلیم بودن در متا باب 11 وجود داره. در آیات 28، 29 و سی، خداوند ما تعلیم بزرگی درباره حلیم بودن به ما میده.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 زیرا یوغ من خفیف است و بار من سبک است. بردباری و فروتنی همون حلم هست. همون حلیم بودن هست. این دعوت بزرگی از سوی ایسا هست. این دعوت خطاب به مردمی هست که سخت کار می تا بارهای سنگینشون رو حمل کنند. این دعوت خطاب به کسانی هست که زحمت میکشند و بار سنگینی دارند یا خسته و گرانبارند دعوت عیسی از این مردم سخت کوش و گرانبار این هست بیایید دعوت این هست نزد من بیایید معنیشی نیست که به کلیسا بیایید حتی این هم نیست که به کلاس کتاب مقدس بیایید معنیشی نیست که بیایید و در آین ها شرکت کنید دعوت اینه که نزد من بیایید و این دعوت عیسی خطاب به تمام کسانی هست که خستهاند چون بسیار گرانبارند و مدت‌های طولانی سعی می‌کنند این بارهای سنگین را حمل کنند. وعده عیسی به تمام این گرانباران و همه مردم خسته این زمانه اینه: من شما را آرامی خواهم داد. اولش به نظر می‌رسه که این چیزی اتوماتیک است. شما بیایید و من اون رو به شما خواهم داد. اما وقتی به دنباله دعوت نگاه می‌کنید، اون نه تنها به این مردم میگه نزد من بیایید، او میگه از من یاد بگیرید. چیزی که او میخواد این مردم خسته و گرانبار یاد بگیرند اینه که اولاً چیزی در مورد بار من یاد بگیرید. من هم باری دارم. اما بار من سبک است. حالا این به نظر من حیرت انگیزه. او بار تمام دنیا رو به دوش داره. کتاب مقدس در اشعیا پنجا و سه شش میگه همه ما مثل گوسوندان گم شده بودیم و هر یک از ما به راه خود میرفت. خداوند گناه ما را به حساب او آورد و او به جای ما متحمل آن مجازات شد پولس گفته که خدای پدر عیسی رو واداشت که به خاطر ما گناه بشه زیرا او را که گناه را نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در وی ادالت خدا شویم. او گناه تمام جهان رو بر خود گرفت این دقیقاً یک بار سنگین هست با این حال او گفته بار من سبک است و بعد از ما میخواد که قلب او رو بشناسید او گفته من حلیم و افتاده دل هستم میخوام که قلب منو بشناسید او گفته چیزی در مورد یوق من یاد بگیرید ما قبل از اینکه ببینیم عیسی از ما خواسته چی رو یاد بگیریم باید ببینیم خود یوغ چی هست یوغ یک بار نبود یوغ ای هست برای کشیدن بار یوغ ای هست که برای یک حیوان مثل گاو نر این امکان رو فراهم میکنه که بار سنگینی رو بکشه شاید گاری های سنگینی رو دیده باشید که پر از بار هست انواع بارها و توسط یک گاو نر کشیده میشه تا حالا از خودتون پرسیدید که اگر اون گاو نر یوغی گردن نداشت آیا میتونست اون بارها رو بکشه؟ آیا گاونر میتونه با سرش فشار بده و باری رو حمل بکنه؟ یوغ چیزی هست که برای گاونر این امکان رو فراهم میکنه نیروی خودش رو طوری کنترل کنه که به آسونی اون گاری با اون بار سنگین رو بکشه. وقتی عیسی در ناصره در کارگاه نجاری کار میکرد، یکی از چیزهایی که او احتمالاً میساخته یوغ بوده. یوغ ها یکی از ابزارهای متداول در دوره عیسی بودند. چون برای جابجایی بارها از گاری و حیوانات استفاده می شده امروز ما انواع تراکتورها و لیفتراک‌ها و انواع ماشینالات رو داریم. تریلر داریم، انواع مختلف ماشینالات برای جابجایی بارها داریم. ما شاید یوغ رو به عنوان یک بار ببینیم، اما اون بار نیست. دوباره اگر به بالای کوه برگردید، اونجا که عیسی از حلیم بودن صحبت میکنه و به جمعیت پای کوه با همه مشکلاتشون نگاه کنید میفهمید که وقتی ایسا سومین خوشابه حال رو مطرح میکنه چیزی که میگه اینه آیا مردم پای کوه رو میبینید؟ بسیاری از اونها بارهای سنگینی دارند اونها خیلی خسته هستند چون مدتهای طولانی سعی کردند اون بارهای سنگین رو اون مشکلات رو حمل کنند چیزی که در واقع اونها نیاز دارند یوق منه نجاری مثل عیسی. میتونست یوغی بسازه که کاملاً اندازه باشه و قسمت درونیش اونقدر نرم باشه که حیوان رو ازیت نکنه. چون حیوانی که یوغی مناسب اندازه خودش داره و از درون توسط یک نجار خوب به خوبی سنباده خورده باعث میشه که حیوان بارش رو به آسونی بکشه. اون باعث میشه که بار سبک به نظر بیاد. چیزی که ایسا در دعوت بزرگ خودش در سعایه آخر متا یازده میگه و وقتی سومین خوشاب حال رو میده دقیقا این هست. راه خاصی برای زندگی هست. اگر زندگی رو اونطور که من میبینم ببینید، خواهید فهمید که مجبور نیستید اونقدر بار سنگین را حمل کنید و اونقدر خسته بشید. او واقعا اینجا داره میگه زندگی رو اونطور که من میبینم ببینید. مثلا اگر رفتارهای درستی داشته باشید، خواهید فهمید که اونها میتونند بارها رو سبک کنن و همه چیز رو آسون کنن. چیزی که عیسی داره میگه واقعا این هست که اگر ارزشهای من درک کنید اگر رفتارهای من درک کنید اگر اصول روحانی رو که میخوام به شما نشون بدم درک کنید چیزی در مورد بار من یاد خواهید گرفت. خواهید فهمید که بار من سبک است. اگر بفهمید که من حلیم هستم خواهید فهمید که من واقعاً میخوام اراده پدر رو انجام بدم. او تسلیم یوغ پدر شد. در یوحنا باب هشت ایسا فرموده من همیشه کاری انجام میدم که پدر رو خوشنود میکنه. ببینید این یوغی بود که عیسی به گردن داشت. تنها کاری که میخواست بکنه انجام اراده پدر بود و در تمام اوقات زندگیش صد در صد تحت کنترل پدر بود ما اصطلاحی داریم که این روزها خیلی از اون استفاده میکنیم پر از روح ما ایماندارانی داریم که پر از روحند و بعد ایماندارانی که پر از روح نیستند ما واعظینی پر از روح داریم و واعظینی که پر از روح نیستند همون چیز در مورد واعظین پر از روح و کلیساهای پر از روح هم گفته میشه اما جدید از عبارت پر از روح اینطور استفاده نمیکنه گاهی وقتی من بین مردم هستم و اونها صدای منو از رادیو شنیدن یا منو توی تلویزیون دیدن گاهی میگن او شما همون واعظ توی تلویزیون یا رادیو هستی؟ آیا شما پر از روح هستید؟ و جواب من غالبا اینه. معمولا میگم من همیشه پر از روح نیستم، شما چطور؟ آیا شما همیشه پر از روح هستید؟ آیا کسی هست که همیشه پر از روح باشه؟ گفته شده که عیسی همیشه پر از روح بود. اما من فکر نمی کنم هیچ کس دیگری در تمام لحظات زندگیش پر از روح باشه. پر از روح بودن به معنی در کنترل روح بودن هست. من فکر نمی کنم هیچ کدوم از ما واقعا بتونیم بگیم همیشه پر از روح هستیم. چون در این صورت مثل عیسی کامل می بودیم. اما معتقدم که به ما فرمان داده شده پر از روح باشیم، در کنترل روح باشیم، وقتی از فرمان کنترل شدن توسط روح تاعت می کنیم، این زمانی هست که حلیم هستیم. این معنی حلیم بودنه. ببینید، عیسی وعده بزرگی داده. او گفته اگر نزد من بیایید، به همه شما که گرانبار و خسته از بارهای روزانه هستید، آرامی خواهم داد. اما برای آرام گرفتن در این دعوت عیسی، در پایان متا 11 یک فرمولی هست. باید در مورد عیسی چیزهایی رو یاد بگیریم. چرا بار او سبک بود؟ چرا یوغ او کارها رو آسوم می کرد؟ ما باید در مورد قلب او یاد بگیریم. عیسی قلب فروتنی داشت. او حلیم بود. او همیشه کاری رو انجام میداد داد که پدر از او میخواست انجام بده. قلب او در کنترل پدر بود. وقتی این چیزها رو در مورد عیسی یاد بگیریم و اونها رو به کار بگیریم یعنی وقتی او میگه گه یوغ من بردارید، اون یوغ رو بردارید، وقتی اون شرایط رو به جا بیاریم اون موقع میتونیم بگیم که در جانهای خود آرامی یافته ایم. این منظور عیسی از سومین رفتار زیبا بود. خوشابهال حلیمان زیرا ایشان وارث زمین خواهند شد یعنی اونها همهی اون رو دریافت خواهند کرد. این کلمه خوشابهال کلمه ای هست که باید روی اون تمرکز کنیم. در بعضی از ترجمه ها گفته شده متبارک باد و در بعضی از ترجمه ها گفته شده شادباد. شادباد فقیر در روح. شادباد کسی که ماتم داره. شادباد کسی که حلیم هست. کامیابی روحانی تعبیر دیگری برای کلمه خوشabہال هست. این به معنی کامیابی مادی نیست. به معنی ثروت مادی نیست. کلمه خوشابهال توسط بعضی ها به معنی کامیابی روحانی تفسیر شده. کسانی که به لحاظ روحانی کامیاب هستند کسانی که این رفتارها رو دارند، اونها در روح فقیرند، ماتم دارند و حلیم هستند. تعبیر دیگری از کلمه خوشا به حال هست که من خیلی دوست دارم و اون این هست که در ناحیه فیض در روح فقیر هستند. در ناحیه فیض ماتم دارند و در ناحیه فیض حلیم هستند. به عبارت دیگه کسانی که این رفتارها رو دارند، زندگیشون در هماهنگی با خدا هست. به نحوی که خدا میتونه فیضش رو در زندگی اونها بریزه فیض به معنی صفتی از خداست که به وسیله اون او چیزهای خوبی رو به ما میده که شایستهش نیستیم رحمت صفتی از خدا هست که به وسیله اون چیزهایی رو که سزاوارش هستیم از ما دور میکنه ما وقتی رفتارهای درست داریم در ناحیه فیض قرار داریم و به این دلیله که مطالعه این اولین گرده همایی ایسا بسیار مهم است. این گرده همایی در خلوت که میتونه ما رو تبدیل به راه حل و جوابهایی برای او بکنه. برای ما مهمه که درک کنیم این ناهیه فیض که ما رو تبدیل به راه حل و جوابهای او میکنه مربوط به چون این رفتارهایی هست. به حال کسانی که از فقر روحی خود آگاهند، زیرا پادشاهی آسمان ازان ایشان است. ماتم زدگان زیرا ایشان تسلی خواهند یافت. حال حلیمان، زیرا ایشان وارث زمین خواهند شد. دوستان، موزی سر کوه بسیار فراتر از سعالیم ایسا درباره این هست که پیروبان اون باید چطور رفتار کنند یا حتی رفتارهایی که شاگردان اون باید مشتاقش باشن و تجربه کنند. ما در دانشکده کوچاک کتاب مقدس، می میکنیم که این درس ها به شما کمک کنه که در آگاهی و ایمان رشد کنید و شما رو تشویق کنه تا قدرت خدا رو دریافت کنید که شما رو قادر میکنه ماننده تعالیم عیسی که در سر کوه به شاگردانش داد زندگی کنید تا برنامه بعدی دعا میکنیم برکات خدا بر شما و خانه شما بیاد تا شما مشتاق باشید ماننده پیرو حقیقی عیسی مسیح زندگی کنید